سلام. ایل رب یه دید کنم. او خانم اومدن شایم. اگه نگفتم فیلمنه ید. از با کشی کاری. مهاری پیشون نیم شایم. کنم کن خانم. خیلی خوب به برشوتل تاور گرد چشمو سعزاد یاد میکنه کسی میشناسته نه آقا لشتو بیاهو نمیدن آقا بیاهو چوده بیاهو چوده آقا با آقا با چه فقط فقط این رو نمیدنم آقا زیارو اگه حرف بزنه من چش تو میبینم آقا چرا آقا وقتی آقا به بزنه آدم چرا و اما دیگه نمیاده فهمیدیو نه فهمیدم آقا فهمیدم نمی خوام پیاده شین. برو خطا تو جون چی؟ چش شغا. خانم با بفرمایید ماشین هست. شما بفرمایید من خودم میرم. خواهش می‌کنم بفرمایید. فکر کردین ملاقات های گاه و من و شما زیاد بابت من و خانوادم نیست فکر کنم بعد از این وقت با پدرم صحبت کنید من شناخته زیادی از شما ندارم هر چیزی لازم باشه بهتون میگم. من چیز پنهونی ندارم میخوام تا اونجایی که میشه از خانواده مصطفی دوری کنم هرطوری شما بخواییم هر جایی بخواییم زندگی میخوانیم اما از بابت خاندان مصطفی نوه نگرم باشه من قصد سرشاخ شدن با ندارم دنبال توزی و جنگ و دوا نیستم اگه جای دیگه کار پیدا کنم که هیچ در غیر این صورت مثل مادرم یا مثل فریده میشیدم توی خونه عشق شوقه البته نباید همه اینا رو جواب مثبت تلقی کنید همه چیز مکول میشه به گفتشانات شما و پدرم بسر این کار کاری درست روز چهنوز آزاداره. یه چیز اون میگه یه چیز تو میگه بسون جدل میشه و ماجرا از اینی که از سختر میشه دایی جان من میدونم دارم چیکار کار میکنه شکو میدونه بخوایی این کارو بکنی شما به این توتاقتون نگرن نگرانم نباش. نمیدونی دیگه نمیدونه به چهنوزی استراحت میکردیم جنم توتون چی فیران استراحت بر من هر آنه خب سر کار باشین شاید بهترین این فکر خیال عذیت تو میکنه بگو حرف چیه کار دارم قطع این اکس خیلی کوچیک بود به زحمت بینندازه درش آوردم قشنگی خدا رحمتش کنه اکس چیز غریبیه خودش نیست ولی تصویرش هست مونگار میکنه آدمو از این طرف اون طرف چیزایی شنیدم که خدا کنه واقعیت باشه. چی شنیدی؟ امروز نه فردا یه صحبی یه زهری یه شومی بلاخره میفهمم که پسرم رو از من گرفت این چاقو رو میشنسی؟ شاخ گل هست مال زنجانه همیشه تو جیب شاروخ بوده و چیزی همین چاقو که مال گوش تا گوش گلوی اون کسی رو که شبونه و به نامرزی پسرمو از من گرفت میبرن جای شما باشم میسپرمش به خدا کین توزی عصبانیت سر آدم به باد میده آقای تو این چی عزیز. خاک سرده زود یادتون میره فقط مواظت باشین بقیه اعضای خونه یه تو یه وقتصددم عداسی هنوز اونقدر شفاف نشده که بشه بهشون عکس خوب گرفت فقط عکسارو تار خفه میکنه عواضه چاپ زهوری هم که برای بله من میارن اینقدر از تاریخش میگذره که دیگه اصلاً کار کارکردی نداره عکس اینجوریه من واقعا من. من هر چی منی من هرچی بگم تو همون انجام بدی مگه روزی که اومدی خاستگاری کور بودی ندیدی من چه شکلی ام مز روز اول همین شکلی بودم الانم با وجود اینشون حرفاشونو زدن تموم شد بریم قربون سلام آقاجون علیکسالم من برای یه موزی اومدام خدمتون محسوم خانم گفت... محسوم خانم چشم محسوم خانم شما بگید توقع زیادیه یه مرد از زنش بخواد به حرفش گوش بده به شرطی که شوهرش هم حرف حساب برای گفتن داشته باشه آقا جون. شما بگید یعنی همه مردایی که دست زنشونو میگیرن میرن مهمون دولتی حرف بی حسابه چی فکرشو میکرد یه روزی به سر حاد سر دست محرمشو بگیره بخواد ببردش با سر لخت مهمونی دولتی ماهی سالی گلسی مهموری چیزی اونم که زود تموم میشه شک ندارم بابا در دست کارای تو سچکا شد بالاخره هر جایی رسومات و آدال خودشو داره اتفاق نمیافته گناهه کنه گردن من اون که ناموسشون نداره یا همچی جاهای بی خیراته بی خیرات. حس بدی بر من ماشول آقا درسته است که ماشونه خانوی شما لش بازی کنه حس به مامویت من تو سویت بر رو هوا من نمیفهمم و دو ساعت بیه جابی دیده کی دماد افتاد که ماشونه خانوی شما دوباره میشه. برو بی خیرات خونه که نی پاتر بیه تا که دم آدم میانمیرد. آقا. آقا. یه جایی که دیگه دور امروز دوباره فهدو می‌بره. شما به حکومت واقفا نمی‌کنی آقا. سر از آن زهر میای محصر سیدریس. تا وقدمه این دختره امضا می‌کنی، میزی به من، میزی بده کار. می هر همونی الیلا جان که می‌خوای. فهمید یا فرو کنم تو گوشت. خواه، دخترم من یه جایی خوندم که اگه تو نور مستقیم رو همین دور بین عکس بگیری زمان موندن عکسم تو داروی زهور بیشتر بکنی عکس شفافتر میشه اینجور کارا رو بگید براتون انجام بدن شما که انقدر خدم و هشم داری دوست دارم خودم به این عکس دست بکشم خدا رحمت کنه مرحومه اتا دولر رو بچه که بودم باید هر روز این اکس ها رو مرور می کردم نگار هر بار یه چیز تازه توشون پیدا می شد مرحومه پدرم وقتی این اکس رو گرفت من هفتش سالم بود تازه دوتا اکاس پشی از فرنگ اومده بودن اون وقتا که تو هر خونه عکس نبود دادم نقاششو کشیده میخوام بخونمشون چی؟ میخوام بخونمشون خوندن این مهمات فایده برای نداره غیر از این که هوایت میکنه گفتید برگرد ایران برگشتم لاغت خوندن اون نامه ها رو از من دریغ نکنید دوشته میخواد زن اختیار کنه باور نمیکنی؟ پس چرا نمیذارید خودم بخونمشون؟ این رفتارتون منو ناراحت میکنه خودم میخونم جوابشو میدم مردا همه غیر قابل اعتمادن مخصوصا اگه فرنگی باشم اینو بفر وقتی میومدم ایران گفت میام به انبالت بساتو ولی شاید اتفاقی براش افتاده هیچ چیش نشده براش سرگرمی بودی هیجان بودی الانم هرچی راجبش کم تر فکر کنی برات بهتر درجون تو چرا از من عجس میگیری؟ خب دلم میخواد تو خونه هر طرفی رو که نگاه کنم صورت ماه تو ببینم جای صورت ماه من بر اون دیگو هم بزن شما از برگشتن من ناراحتی آقا جو وقتی <تصفيق> من نبودم اوزا بهتر بود برو برو اون خوشقه رو بندازون بر. محلت قدیمی آقا جون. مردمش همه شنان تو کار همدیگه سرک بکشن میخوا من اینجا بری عزیز دلم محله بدون حرف نمیشه گورم بی ازا این خونه ستونش لقه یه باید بیان سختش تو سرمان خراب میشه ها. تو حرفای فریده ناراحتی. وقتی بهتون گفتم خونه رو عوض کنیم شما قبول نکردید اومد به من گفت پولا رو بده به من من آقا جون رو راضی میکنم شاید حق داره شما بیش از اندازه قانه وقتی میتونی بریم توی خونه بهتر زندگی کنی وقتی میتونی بزرگتر مغازه شهر رو داشته باشی ست برور اون در آمد داشته باشی چرا قبول نمی کنی آقا جون چرا قبول نمی کنی نفس پدر روزی هر کس از پیش مقصومه رزقش هم معلوم هر چون باشه اینقدر میگرده میگرده تو صاحبش رو پیدا کنه برسه به صاحبش شما هیچ وقت نخواستیم پیش رفت کنید همیشه به اون چیزه که داشتیم راضی آخه این بده دیگه آقا جون از دیدن زیاد فقط کفشات پاره میشه آقا جون بیاین قبول کنیم این خونه رو عوض کنید ببینم الان تمام درد و مسئله تو این خونه هر وقت بهت کار می سفرم گم می توش مگه قرار نبود برای ریاست بیمارستان شروع و زمان یک کاری بکنی چه کردی چی کار میکنی شرمندم نشد پیدر صفته اگه بازم اومدی علکی ازم پول بگیری ندارد من که جان نسترم خانم پول بیشه نو کری شما چرزشی داره اما واقعا در یاد من نیست قبلن که فکمتون عجل کردم عملهای جرائی فرق و زمان خانوم محفظیت آمیز نیست گیر داره دکتور کارش عمله موجزه تی نمی که من برای اطمینان قلبی خورم با چند نفر تو فرانسه مکاتبه کردم فرق زمان خانوم آدم با احساس پر انرژی پر هیجان حتی چند بار با آدمهای مختلف رمله عشق انداخته بود آخریشم که شما در نام نامهاشم موجوده البته جوان بدی نبود آوردین اصل و نصب نداشت نباشت کنار رو بسنش سمود از شهره را گذبا من کشم تو مبدی اینجا راجب زنی حرف بزنی که اون سر دنیا رفته درس خونده تو بهترین دانشگاه ها دکتر شد آمده به مملکتش خدمت کنه حرف داردین فردا روزی که بشه اولین وزیر زن ایران حرفای تو بشه نقل مقتل زنا تو هموم زنونه موشل همینجاست گویا اشتغالات و ایشون فرصت ادامه تحصیل رو ازشون گرفته رو تمام نکرده این چرمجی ها چیه؟ چیه میگی؟ کاش موزخرفات بود اما متاسفانه حقیقت الان کلی آدم صاحب دیوان هست که صد تا خاطه رو نمیکشن اون موقع که اونا طویله تو فرنگ تمیز میکردم دختر من تو بهترین دانشگاهی اونجا درس میکنم فرمایش شما سی همهای دانبایی که الان شما بیگی پشت میز مدیریتی، ریاستی، منصبی نیشستن یا کاری انجام نمیدن یا کاری انجام بدن سهالات بگیرندش دردیان اما فوقزنمان قانون که جرایی دستشه میره تو اتاق عمل ایلو که نمیشه ببزیر فشت چون مردم دستشه فروغ و زمان اگه اینا رو نبینه اینا با پشکل و هنبرنسارا خود رو مالجه میکنن این ماجرا رو فقط من میدونم او تو اگه ادهن یکی پش نبین چش چش خودم چه. حلش میکنم تو این چند روز یک کاری میکنم که هیچ مریضی حاجت نگرفت از اتاق عمل فروغ و زمان بیرون نیاد چجوری؟ افتخار ملاقات کیو دارم؟ شکوه و سلطنه همسر مصطوفی و زمان متوفا وصف تو رو شنیدم؟ منم وصف تو رو از دخترم شنیدم تو این خرابه بابت میکنی؟ این بیمارستانه من گلازین تجویز می‌کنم برای بهبود بینای چشم شما پس راجب رکیت گزافه نگفتن بالاخره شلاقم باید برازنده ازنده تن خورندش باشه نباید باشه خونتو کردی شفاخونه ی غیر قانونیو و نوشته‌ها مالیه اگه محض تهدید و ارعاب تشریف آوردید اینجا باید خدمتون بگم عادسه غلط بهتون دادند کمیساری سه کوچه بالاتر نه من از سر دلسوزی برای کمک به مردم آمدم بفرمایید گوش میدم. اونجا آدمای های بیگنای هستن که دارن جون میدن شما باید برگردیم به اون بیمارستان بنده اجالتن مسئول این شفاکونه هستن یک کسانی میخواستن برای نوشتن اینا و ساختن یه بیمارستان غیر قانونی بیان سر وقتتون من مانع شدم خانم شما خیالات بزرگی برای دخترتون تو سر دارید ولی با این روش آفرین. انگار که باهوسی و قصد منو فهمیدی چقدر بهت بدم که برگردی بیمارستانو به فروغ کمک کنیم اینجا برای معالجه مردمی که مراجعه میکنن بسه به وضاحتشون گای وقتا نیم کلو خورمای انجیری کشمشی چیزی میگیریم نه برای مداوای تو اینم نمیری نه گفتنه به منو که میدونی یعنی چی بیا برو بیرون خانم خدا اول بلا رو دفت میکنه بعد خیرش رو میکنه همین که جون مردم بدبخت بیچاره رو گذشتی زیر نصد اون دختره گلد پزشکی هیچ چی نمیدونه بخش اگه مردم اینها رو بفهمن کس و تو نابود میکنن بیرون خانو، بیرو. معلومه که سریع نابشخور از کجاست یک جاک بیشتر بر اون باقی نذاشتیم پروفسور نامسابی گفه بعد، نفر بعد، مثل من نیست خوتا داریم میدیم برو اتل آقا امشب جا به جایی و تحفیل داریم همشب نه کارتون خوب ها آقا؟ شما خیلی بهتر از من سباکس اینجا جردن و پلدیم شما شبا آقای... ب... آ... مهرگان هستم خسرو بله خسرو مهرگان خوشقالم خوش اومدید در خدمت هم بخواستم بهتون یه اختلاطی بکنم آ... آ... خ... آ... خب بفرمایید بفرمایید بشینید بفرمایید خواهیش بکنم خالی خالی که نمیشه اختلاط کرد راستید مشکل کت شما حل شد؟ ترخواستی دارم ولی من از همون نوبه اول فهمیدم که یه یک کوکوکلکی به شلوارتونه. بارتونه شوخی کردم بابا حرفتو بذار میخواستم اگه رخصت بفرماین یه روزی رو تعیین کنین برای عمر خیر مزهن بشم چایتون سرد نشه اینو کرایه کردم دخترم گفت زیاد نچرخون فنرش میشکنه چرخوندم امانت مردم خراب شد یه نقایی بهش مندزم گمونم فنرش شکسته من این دختر رو به سختی لای زر و رق بزرگ کردم نمیتونم مثل کوپه گندم به هر بادی که از را میرسه بسفورمش خاصگاری آدابی داره البته برای امر خیر نمید اشکال تراشی کرد ولی دختر من توفیق داره با بقیه دختران تحصیل کرده سختگیره منم که پدرشم سخت گیر تر از اون. از من بعدتون نمیاد من سرم به کار خودمه شیله بیلیه تو کارم نیست دخترتونو خوشبخت میکنم درست شد دست درد نکنه من چیز فنهانی ندارم زندگیمون بریزم رو داریه پولی با خودم کلنجا رفتم تو جرعت کردم بیام اینجا دیگه جرعت نمیخواد امر خیره با شما هم حق داریم بیای خواستگاری ولی خب توقع جواب مثبت نداشته باش پاشو با خانواده اهل بیت بزرگترت بیاین میشینیم گپ میزنیم میوشینی چایی چیزی مخوریم بزرگواری میکنیم بلن که چشمه اول خوب اومدی چه ایت خالا بیماره خوزروخان چطوره؟ خدا شکل هم دو للا خالا شکل خوبه خوبه حالا تو همون تخته پسر همون شکشته ای ما بله ممنون خالا شکی بام خدا خوزروخان هم باشن اشکالی نداره. <تصفيق> زن آینه نگال هم هست. کی زن اون مادر هسته؟ یه یعنی من نمیتونستم اونجا درمانه مردم از میخلیم من جهاز آجونی درمیسته باید باید شما نگرم من نباشی بهتره به کارات بریز من اینجا بشه اینجا مگه جایی مردن عزیز دلم من به شما نمیتون شما پیش آقا شاید حالش بد بشه آقا جون شما تو خدا سرحال و است شما بهتر نگران من این بچه باشید اینطور میخواستین تکلیف این آقایی اکسر کنین؟ من امروزان حال ندارم میدرستم وقتی به اینجا برسیم پشتم خالی خالی میکنی پس کون دستای پنونتون این آقا داره منو رو تبعید نکنه به بیابونای سیستان قلط میکنه تو. یا درست داره این کارو میکنه امروز هم حکم زده ریاست انحصار جنوب ماجیرهایی در کار نیست تموم شده رفت برادر شکوان سلطنه رئیس کنه شد هیچ تبعیدم نشد. ای توف این زندگی و وقت سیاه سلام مدتی ازتون خبری نیست جناب افسوس اتفاق قابل هرزی نبوده خانم ببینم من تو رو فرستادم دربار چیکار کنی؟ بخوری و بخوابی و بچری خانوم ما که هر جا نشستیم اون پا گفتیم نمک برورده خاندان شما این مگه قرار نبود حک به اسم عطا بیاد حرفت باد حواس برای ریاست اداره انحصار آدم میکشن خانم تو این دور و زمانه ترویه تو طلا رو داره کل ثروت کشور از این اداره بگذاره خانم پس پرده رو بگذاره دربار براش مهمه که این شارعه ایاتی ایم املکت دستیکی باشه احساس به درده میخوادی داری صغراکورا میچینی که دو بیلیاغتی خودت ترفوش بذاری خانم من یک کارایی میخواستم بکنم یک نقشه هایی داشتم تو این چند روز هر چقدر خواستم یه نشستی با مهرات خان بذارم پیداش نکردم باید سیبیل چند نفر رو چرپ کنن یا نه این رئیس شدیده یک بگیر و به بندی را انداخته. حالا میشه یه کاری بر علیش کرد ولی مهرات خان به ما من نمیذار آخه خودم با مهرات حرف میزنه آقا دیگه مثل سابق نیستم انگار دست جا به کار نمیره تو نمیخواد بر ما تعیین تکلیف کنیم هنوز اونقدر بدبخت نشدیم مهرات خانم اگه جواب ده میده لابود سلاح دونسته میبار میرون خانم من والله قصد و نداشتم باشه قفلت چه عرفیه میزنی؟ باشه کسی باشه کارد شو چه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باید دست بسهش بره ها جونم منزله خانم شکیبا اینجا منزله پرویز شکیباست خانمه شکیبا هستن؟ فرمویش میخوام با خودشون دو کردون حرف بزنم. ایت کار چی میکنی؟ میفهمم دو کلمه نرفت. بیش بگو بره. بگو زلاش ندارم. وای من میگم بره. برو برو بگو زلاش ندارم برو. برو چی؟ کار داره. بعدم اوراجیت کن تلاش می‌کنم بهشون بفرمایید من دو کلم بیشتر باشون حرف ندارم. چه کار دارن؟ باشه. صبر می‌کنم کارشون تموم بشه. حالا حالا کار دارن برو بگو چی میگه؟ خب پس خود در روز معرکه را می‌نداز یا دردونه پروین صیاد؟ بهت میگم چی گفت. چی گفتی چی با حرف بزنه نیمیخوام باش حرف بزنم بیمار بگو نمیخوام اختش رو ببینم خیبا به من چه بیمار بگو بگو بره دیگه خیلی خوب با خیلی خوب با داره با داره بدم عاشق دهنم اون کشتم ها چی بلد بدم مقدارش با دارم مدکه تازه به داران رسیم تا کرده ما هشتمون گروه نوه من هنگوش به دهن نشستیم تا ده یه خانداری از آتیش به سر شدیم مردی که میخواد بیاد خوشتگاریم حکی هم مراد پر بیرا نمیدون من نمیتونستم چریکی تو کبزش دارم خیل. چوما که زود جوش میاری زود کف میکنی زود سر میری او تو کی عاشق شدی کی فوره بهروز از, از سر من برداشت ببینم نته کارت هی hey, دل تو تو صندوق قایم کردی هی hey, دل تو تو صندوق قایم کردی الان دنبال گژکی میگی که توش دد بکنی میگم زن داره خودم دیدم دیدمش دیگه چیه گذک چیه من گفوم کی آدم زادش فوت شده یا سرش طلاق گرفته نه چیز باشه حالا چی حالا چی فیک شباید همین طلاق گرفته باشه او بول بود که او بنافا بسته بود معلومه زنشه طلاق نگرفته من میدونم شباید مرد بدی هم نماشه من رو بزنه دو اوم شو چی پی نشو عطبانی نشو خوب فتبخ باید برزرشه که تا عوض درش بیاد نه شما خان کلی قصه ما یاورد که این با ما یه ریگه تو کنف چشه تو به درک هم حسابش نکردی یه کم پرسجو کردی سوال کردی من خاک بر سر رو میپسته دو میرفتم درمی آوردن این خود داشتم نری رو سر ملت و مردم بگو شکوفه زدم توش رو به کارش دیگه مردی که یا برو خودت درست حسابی جوابش کن یا خودم میرم راستوریستش میکنم جواب به میراد خوانم با من ببینم اگه تو دختر بودی یا همچین آدمی ازت خواستگاری میکرد چی کار میکردی من اگه دختر بودم کارایی بهتری برد بودم شایدم کارایی بهتری اما که نیرو خون بود سرم بود کرد تو برد که کشم این چه نبینه نشستم دست رو دست گذاشتم یه پشت کوی زپرتی یادش زندگی ما غور بزنه بره نباید کاری کنم خب فکر میکنی، الان مغشه تا الان هم اجازه شما بوده وگه نه تا صد بار مرگشو دیده بود آدمشو داری؟ کی دارم حالا الان تیرش خطا I'm